الحمد لله رب العالمين الله على محمد و على علاج مجنعين الله از کلی در باب روایات و دحس رو که آدان فرمیدن یه مقدار رو فرنه از مکاسه محرمی میکنیم چون دو تا محرم جدید داری خب در آخر روایت این و کتب علی در ایشان در این کتاب عنوان نعمل فرمان و کتب این طور در وسائل هست یعنی که در خود تحذیب و کتب تویدهی داری جویلت و فداک و قوائم و سیوف دسته های شمسی علتی علتی صفت از برای قبائم بسن ما از سفن سفن رو گفتن به, به تحریک به تحریک یکتر بفرمایید در کتب قدیمی مثل مجموع بحره مغیره یک کتب لغم داریم مثل مثلا از سفند تحریک مراد این برای توضیح تو لازمه لیکن اینشالله تعالی در مرادشون اینه که شون مرادشون از تحریک تحریک اینولفه چون فامولفه که حرکت داشته باشه و وقتی سنخ حرکت رو ننویسن اصل اولی فتحه. چون که در آدم که باز میشه اما فکر توجه میشه پس اگر به تحریک یعنی به فتح اول و دوم این کلمه به تحریک در مجموع الوحرین و در دیگه به معنای فتحه اول و دوم یعنی سین و فا رو فتحه بدیم استغایی استغایی استغایی از دیگاه که پیش آمده این طوری بکنم حالا یهانه از صفن به تحریک من خود من احتمال میدم لفظ صفن یک لفظش شاید خارجی بوده مثلاً چون احتمالا اینجور توست ها رو هم از خارج میبودن مراد ما از خارج خارجان اسلام یا از هم روس و آفریقا رو مثلا جه هایی که گاملیش داشته یا کرگدن داشته یا پیل داشته این توست هایی که خیلی قوی هست و بعیدم نیست اصلا لفظ سفر هم از اونها گرفته شده، کشونه خود لفظ سفر مثل سمور و سنجاب و قاقم املاع و مختلف حیواناتی که بعد در روایت آمازد در فتا محل اختلاف و برحال صفن عبارت از دسته های شمشیره و در بعضی از کتاب ها نمیشتن که از ماهیانی دریایی به نام اتوم یا, یا اتوم یا اتوم که جمعشان اتوم باشی در باره اتم اتم اتم یعنی با و تا و وام و می، اتم چند معنا شده یکی معنی سنگ پشت های لاک پشت های دریایی لاک های بزرگی است در دریا احتمالا از لاک اونها که سفت بوده برای دسته شمچیل استفاده می کنند لاک پشت شده تنسا هم تفسیر شده در بعضی از تفاصیم آمده بعضی از حیوانات دریایی تبینه شد چیه که از پوست به استفاده می در بعضی از موضوع صدف در همین کتابی رو مقیه صدف گیرسته اتم, اتم به معنی خود صدف گرفته. این دستایی که ما تو عکس ها می بینیم تو این موزه ها هست که سرم از هست قالبا به نظر همین جمعی ماده صدف صدفی باشه بیشتر که ماده در از به دسته های شمشیر رو از یک نوع حیوان دریایی حالا یا لاخوش بوده یا تمساه بوده یا صدف بوده یا یک حیوانات نجد دریایی بزرگ اینا پوست های مقصودش نه از اون میرفون ایش میشه و قواه دسته های شمشیر الاتی تو با از سفن نتخیده ها من جلود سبک از پوست ماهی میگیدون فهل یه جوزه در عملابه ها ولسنا در کل و نحمه ها لحوم ها ارز کنم روایات اول قاسم سیغل نشون میده که ایشون فقط سیغل و شمشی فروش و نیزه و کارش این کارا فقط تنها نموده مرد مل ملامارندیه مل مرد مل متلعیه جز عوام شیعه جزء جز علمانیست اما میشه با فروع آشنا بوده و وقت ولسنا نأکل لهمه ها هم زکر کرده که بخواد بگینام ماهی های حرام گوشت ها. پس ماهی های حرام مثل خود فیمسا هرام مثل خود فسر و کوسا ها حرام ماهی ها حرام و هست ولسنا نأکل لهمه ها یعنی ما میدونیم که اینها ها حرام از پوستشون استفاده بکنیم فکتب علیه السلام لابرد از دوتا نشکال و درست هم هست این مطلب کاملا البته سوال ایشان دارن نتخیده ها یعنی ساختش و بعدش مطلب فروشش دیگه امام میفهمن لا بست چون از کردیم در بحث اول ماهی جز حیواناتی نیست که خون داشته باشه یا نفس سائله به اسلام نظام بخواد امام بفن با اینکه که حرام گوشته میتش پاکیه من جمعه پوست او پوست او پاکش برد خب از کردیم معاصرین ما متأخرین غالبا تو این روایت مثل مرحوم های خوبی دلالتش خوبه اما سندش روزی اون اگر این روایت سندش معتور بود ب... ب... پوست مهیتر میشه تزروی شد لیکن اشکال مرحوم استاد سنده و این اشکال اختصاص مرحوم استاد نداره در زیادی هر کسی دواته نوشه دیگه بزن نیستن دیگه درشت این ابو القاسم سیقل مجهول و لذا قابل اعتماد نیست. ما هم استاد در مکاتب محرم همین صفحه 40 را تذکر کردیم. ایشان خصوصا به یک معنای نحستین کسی هستند که روایت را تضییع و صحیحه کردند. فرمودند روایتش صحیحت و ولایهُ ربها جهالت عبدالقاسم. درست است ابو القاسم که لكن بزرگمند لنن راویل کتاب و جواب هو محمد ابن ایسا چون این جواب رو و سوال رو محمد ابن ایسا نعقل می کنه. و قوله قال کتبو یعنی قال محمد ابن ایسا کتب سیرل پس این کلام از خود سیرل نیست که حالا ما ببینیم سیغل مجهوله و جهالت او مزره به سند باشه لان الراوي للكتاب تر هو محمد بن عيسى و قوله قال كتبوا محمد كتب فهو در محمد ایسا این الان از محمد بن عيسى نو عبيد الله و محمد ابن ایسا سره هست. حالا مخواد اول مح... قاسم سیغل سی... سی... مجهولم باشه باشه و الا لقال اگر رواد ما اون بود میگفت کتب نا چرا گفته او پس قائل اونه مرحوم ایشان معتقدن البته ارس کردم ایشان در عبارتشون نوشتن که لعن راوی للی کتابه ول جواب بس راوی للکتاب و جواب ایشون در این کتاب مدلکینه بعد ایشون بعد الان باز ایشون میخویم بعد ازش و احتمال كون راوی از صيغه مخالف لظاهر جدا که مراد ایشان باشه سی ما معقوله في ها و کتاب الی خلو کان راوی از صيغه لقال و کتاب تو الی پس از این که در ذیل هم داره و كتب الی معنومش این کلام مال مرحوم محمد ابن ایساس هست کردم این استظهار ایشان عجیبه چون این روایت در خود تهذیب و کتب تو اله جواب اخیر ایشان که روشن شد ایشون ظاهرا عذرشونی که نسخه وسایل رو نگاه فرمودن در کتاب وسایل و کتاب اله داری آیتش این که منشون احتمال نسخه رواد مختلف بوده به هر حال من وسائل چاپ جدید مالا آلوبیت ندیدم اینا دقیقترم چاپ آلوبیت انصافم در متن کتاب از اون وسائل مرحوم ربانی دقیقترم نمیدونم در چاپ آلوبیت چی داره اما در وسائل چاپ مرحوم ربانی کتب تو داره و کتب داره. این راجع به این قسمت کلام استاد رحمه الله بعد فرمودن خب تا اینجا البته این یک راه است که ایشان راه جدیدی رو باز کردن برای تصیح روایه با حاصلش اینی که اون راوی خود عبالقاسم سیغن نیست بلکه راوی محمد ابن ایساس ولی اعتبار سند دارمدار محمد ابن ایساس نه دارمدار عبالقاسم سیغن و ایشان شتابت و جواب رو دیدن این مطلبی ایشان مگر مثلا حالا قرائن خارجی خاصی در اختیار داشتن ممکن است انسان به قرائنی بوده اما الان که در خود روایت نیست ما مکاتباتی رو داریم که مثلا فرصفی محمد این ایسان میگه فکر فقر علیه السلام و قرعتل ال جواب به خطه جواب اگر این باشه معلومی شیشون جواب رو دیده اما تو این رواد ندارم چی چیزی تو این رواد دارم فکرت به علیه السلام از صبح از سلام یا فکرت به علی السلام است. و لذا این بحثی که ایشون فرمودن که ایشون هم کتاب رو دیده هم جواب رو دیده به یک قرائن خارجی باید باشه و الله این طور نیست خب این بحث چون بحث خوبیه و من یه مقدار اینجا چون ایشون مثلا خلافنده بر روای خویی و خلافنده ادعی سعی کنه از این راه روایت تفسیر بکنه این راهی ده که ایشون پیش رفتن بر هر حرف بدی نیست اما این احتیاج به تحلیل داره این اینطور به سادگی نمیشه بشه. من توضیحش از ببینید اصحاب ما خلافنده العام نادر یعنی میشه میشگم هر سالی از اصحاب وجود خبر رو از باب حدیث آیینبر گرفته حالا الان اصحاب ما و که از ها متقجن کسان قالب حجیت ندارد قالبن سیاق حجیت قالبن این عدهشون از سیاق و غلائی میدوند سواقی خوی که هم از همین راه خبر سقر حجیت میدوند ما درباره باره یه فقه بیت باید خوب دقت بکنیم خصائص فقه ما یک خصوصیت داره که اهل سنت نداره اونا یک فقه خاصی دارن در این جهازشون ما یک فقه. یکی از فرارق اساسی این است که مؤزم روایات ما به نحو سما از امام بوده بعد نوشته شده یعنی روایات ما اخصا می داری کتب اهل عام خوب دقیق ببرمه یک مقدارشون نوشتارهای خود اون اصل به اسطلاح فقه هاشون و این کتاب احل نوشته خود شافیز تاره سلا نکاح کلا نوشته. از نوشتن ما الان در این قسمت چیزی نداریم از نمشتادهایی ما حالا این البته خودش زمینه ساز خلاف هم هست یه ندار تا مال این میشه دیگه خیلی چون وقتی خود امام مذهب ننوشت بنا شد به نقل بشه این خودش مشکل سازه یکی از مشکلات فقه شیعه و فقیه شیعه همینه البته این مشکل در فقه عزالسونا هم هست نسخه خود فقه الالم هم مختلفه قرائت فلان روایت فلان مختلفه باکین به هر حال کتاب دارن ماها ائمه ما کتاب نداره من اینو انشالله شاء یه دیگه باز توضیحن ار عرض میکنم چندین نوشته ها و مضمون است داده شده حالت مثلا نوشتاری داره مثلا رساله احمش در شایع که سه چهار صفحه میده کل شایع الدین را به صورت موجز امام فرمودند درباش به رساله از عزادزاست که محظر اسلامه و ال آخری میگم من نمیخوام حالا خلاف رخ رضاست که منسوب اشاره تفسیر امام عسکری که منسوب به امام عسکری من در جای دیگه اجمالم عرض کردم تمام این کتاب هایی که منصوب است به اهل بیت همه گیر سندی دارند بدون استثنا صاف الان ما یک نوشتاری از امام صادق که کل ابواب فقه یا لا اقل کل صلات رو داشته باشیم نوشتاری نداریم. ما معظم حجر رو الان توسط معاویت امن عمار داریم لیکن زهار امام فرمودشون نوشته خود نوشتار امام نیست معظم صلاحات توسط حریز داریم که او خودش هم از امام نشنیده حالا این باز معاویت امن امن از امام شنیده حریز خودش از امام, حریز خودش از امام نشنیده حریز از اصحاب امام سادر و باقی مثل زراله و محمد و سلمون و عبو رو ناشنیده بعد داشته کرده ما این رو خوب دقت بکنیم ما اولی مشکل مونی که میراز های علمی ما فرهنگ ما بیشترش به نحو سما و بعد زبط اصحاب به هست این نیست که خود امام اولا مثل نامه هایی داشتن نامه که اشتر و غیر که اشتر اما این هایی که کتاب های فقهی تدوین شده ما این رو نداریم یعنی که یک کتاب فقهی که بسیار حج رو این مثلا تعلیف امام باقره یا امام صادره یا تعلیف فضل حضر وزا ما چی این چیزی الان نداره این یک اینهایی هم که نوشتن از این مثال من روشن شد دو جور یه ادهیشون در خود مدینه بعضی جاها ها اونا می نوشتن امام که می فرمون یه روایت در اوقات داریم اگه آن خواستن بیلن جلد سه وسایل چاپ مرمون رنبانی در, در اوقات که امام وقتی خواستن وقت رو بگم خال ز فتحه الواه حول یکتو سوراره معنی میشه الواهی با خودش داشته بینمیشه نه اینکه از امام ما نوشتار نداریم اون الواه زراره به ما نرسیده <تصفح> مصیبت دوم الان ما زراره در مؤلفین فقه خودمون نداریم در محدثین داریم در مؤلفین نداریم خوب دقت این زراره با این همه شهرتش که بزرگترین و عوصق روات اصحاب ماز، ایشان خودش کتاب در فقر نداره یک کتاب کلامی در باب استطاعت به با نسبت داده شده شیخ کتاب رو مال و امیده نجاشم دیگه نصفه اله. نجاشم خودش گیر داره که این کتاب مال او هست یا نه خب از اون عبارت مایش زراره علواهی داشته حالا اومده باشه در کوفه این الواح رو به شیعه نارد باشه شیعه بگن که ایشون نظری نداری یا متاستعمال ما معظم روایات زوران هست حریذ از زوران نبی عبدالله زوران نوشته بوده به حدیث بوده نمی‌دونه اون که به دستمان ما نوشتار رسیده مال حریزه نه مال زورانه یه عده از اصحاب ما معلوم نیست اهل نوشتار بودن احتمالاً مدینه می‌رفتن اصر کردین بیشترین رابطه حدیثی یعنی بیشترین رابطه تدوین حدیث پیش شیعه سخر شیعیان از اراق کوفه بغداد به مدینه بوده یا از قوم حتی از ایداد اشاعر اولیه اینا به مدینه آمدن پیش امام ساده رو اینا هم که می معلوم نیست اینا نوشته باشن به الان ما آثار نداشتن نوشته احتمال ها اینا از امام چیز شیدن برگشتن کوفه کوفه گفتن آماش امام صادق تو فرمزه آن کوفه نوشته خب رو شما و ما رو خدمتون روشن بشه ولذا شما مثل یک فریه شافی این باره باید برخورد بکنید و این آسای داریم این مطلب انشاءالله من در خلاف بحث دارنده میگه این یه قسمت کارهای ما یه قسمت کارهایی که ما بیشتر با هم اخیرین داریم که به صورت سؤال و جواب استفتار اینا هم اقصامی دارن یه قسمت از این استفتاعات توسط وکلا انجام شده مثل علی بن محضی ها و غزین سعید این هم به دو بخش باز تخصیب میشه یه قسمتش خود اون وکیل نوشته و اطول جواب یه قسمتش دوست قره اطول جواب نداره یه قسمتش داره وقره اطول جواب یه قسمتش روزه علی بن محضی همیگه کده به فلان فکره به علیه السلام و قرأتول جواب ندارد اما به هر حال این نوشتار و جواب و سؤال توسط وکیل انجام شده به این دو تا قسم. توسط وکیل یک بخش سومی هم داریم خب دیگه اونجا دیگه دنبال اون راوی نیمیریم دیگه قطعا دنبال راوی نیمیریم بخواییم بگردیم دیگه اون خود وکیل داره میگه من نامه نوشتم خودم جواب کندم وکیلم هست دیگه دن یه بخش دیگری ما نامه داریم به عمه توقیات و نامه اینها ها وکیل نیستن یا خودشون مردان بزرگی هستند مثل نامه های سفار مرحوم محمد بن حسن سفار که از بزرگانه نامه های بسیار مفصلی داره سوالات جواب مفصلی و از اسکری داره عمی محمد سلام الله عارم. که این نامه ها با خط خود سفار در اختیار مرحوم صدوق بوده صدوق از نقل بکنه مستنه. مرحوم همیاری که از بزرگان اصحاب ماست وکیل نیست سوالات فرابان از زنده مهدی دارم اونام توقییات معروف هست. این توقییات رو خود ایشان نوشته سوال کرده و ارز کردیم این توقییات هم بعدش تاریخ دارن سده هشت سده خورده هست. و این توقییات رو مرحوم ابن قضایلی میگه من پیش من نسخه اصل هست با جواب خود از زنده مهد خب این یک سنخه که بزرگان ما نوشته و به اصلاح جواب بر اونها سنخ دوم این که بزرگان ما نقل کرده اما خودشون ننوشتن فرسون مثل همین رو باید محمد ابن ایسا خودش ننوشته نوشته اول قاسم سیغن نوشته اما ایشون نقل کرده که خب طبیعتا این هم باز به دو قسم تقسیم میشه گاهی میگه من قرارت و جواب بر کتاب گاهی هم نمیگه قرارت جواب در اینجا نداره قرارتال جواب اما جای دیگه هستی قرارتال جواب به خطیه علیه السلام یه قسم ثبایی هم هست که افراد غیر مشهور بیا نقل بکنه مثل زیاد ناهی مقدسه که نوشت مثلا نامه آمد اینطور پس ما انواع مختلف داریم پس این عبارت مرحوم استاد اینطور مردم بشی شبیه این نحوه کتابت بود و اون ناقل کتاب فرد مشهوری بود دیگه قبول بکنیم خب اگر ما بشه که مبنای ما در اینجا مسئله حجر خبر سقه باشه من با مثال میخوام بگم این مبنا باشه چطور اینها رو قبول بکنیم الان با این تقسیم بندیه که من خدمتون اعرض کردم مبنای حجر خبر سقه کاراییش کجاست ایشون میخواهد بگن کارایی حجر خبر سقه در روایت سمایی و شفاهیه نه در توقیه در توقیه دیگه دنبال خبر سقه نمیدیم که مثلا اگر فرسون ابو اسامه زید شهاب ها یا محمد المسلم یا بره یا ابو بسیر یا جمیل گفتن ما خدمت امام صادق بودیم از این مسئله پرسیم ما اینطور بود خب این شما باید باید, باید دنبال خبر سقه این راوی سقه هست یا نه اما وقتی که دنبال خبر سقه نمیدیم این خلاصه ای کلامیشان اینطور میخواد دفعه وقتی به صورت نوشتاره وقتی به صورت توقیه وقتی به صورت سوال و جوابه دیگه شما به دنبال خبر سقه نبیدیم چون جواب مقابل کنه هست دیگه کتاب ها. یعنی اگر مبنای ما در قبول خبر خبر سقه ممنای و باشه نه تعبد باشه اینجور جهالت ها مزر نیستن چون مفروض اینه که اینجا این راوی راوی سمایی و شفاهی از امام نیست اینجایشون نامه نوشته این آقا هم مثل محمد بن ایسا نامه رو خونده سوال و جواب رو خونده و درد شده پس در اینجا ما به جایی که به حال راوی نگاه بکنیم به حال این شخص نگاه میکنیم شبیه این بحثان که الان یه خدمتون اعز کردن در همون طوقی مبارک هم بیاد هم نمکنن این توقیه مبارک امر حوادث واقعه این رو شخصی به نام اسحاق بن یعقوب میکنه که غبیۃ الله نوشته از فتره زمان محمد بن عثمان نامه ای نوشته به جواب شاملید خب این اسحاق بن یعقوب اصلا ما در کل کتب عربه از این آوا نه ندیدیم این روایت تو کتب عربه نیست این توقیه مبارک هم. تو کتاب کمال دین سلوخ هست تو کتاب ریادات شیخ هست تو کتاب احتجاج طبرسی هست توی کتب اربعه این تبیحوارک نیامده بله اسحاق نیعوب هم در کتب اربعه روایت نداره من در کتاب بهار نمی‌دونم در شرح امام هادی بود در شرح امام در اون جلد ها یه دون روایت دیدم که دور اسحاق حسن یا علی محمد حالا من اینکه اون آقا این باش حالا بنابر این که اون آقا آغام... چون ما از این اسحاق نیعوب هیچ چی خبر نداریم کجایی هست، کونیش چی هست، پدرشی، پدرش علی یعقوب همین مقدار. و چون اسمش رو کرده به محمد بن یعوب کلینی، شاید ایده تصور کردن که ایشون برادر محمد بن یعوب کلینی. من من از خودم ثابت نیستو اسمش زاقب یعوبه. حالا معلومه که ایشون، ولی میگه انا اخی، ولی ایشون تعبیر رو برادر. نیز. پس این آقا مجهوله، محمد صادقی. لكن راوی از او کیه؟ کلیلیه. البته من از کردم بعض از اوال اشکال که نگ کدوی حدیث ارده چرا در کتاب کافی نقل نکرده؟ این حدیث کلینی از اصحاب میعوب چرا او... اوائل کسانی که نقل کردن مثل صدوق و درو شیخ طوسی هست که خب خود کلین نقل کرده کتاب فاضل؟ کردم من که نمیدونم ولی چرا اون با دیگه شوخی کردن همیشه احضار این رو روح سوال بنده که خبر ندارم کلین چرا نقل کرده، لكن احتمال از مبعث احتمال چون کلینی طبعیات دیگری یا هم در کتاب کافی نقلا نکرد. اختصاص به این تو طبعا دیگر هم نقلا کرده و اینکه طبعیات همگیری بسیار مشهوره به بزده برده. احتمالی من دادم ولی علم و اندالله من رو کتاب دیگه داشته من رسائل الال که در اون کتاب نامه های را رو کرده و این کتاب تا قرم هفته وجود داشته مرحوم سلیم تاوز در کتاب کشول المهج در ثمرت موجه اسم این کتاب رو برده این حدیث این نامه مفصلی هست که در نحجبال آقام چاپ شده موجود با اونه نامه هست امیر به فرزندشون امام حسن علیه السلام این رو در اونجا در آخر کشفر محجه سه از همین کتاب رسائل کلی نهر می کنه سند داره نحجبال آقام سند هم نداره اونجور کشفر محجه سند داره از کتاب رسائل علمه کلی بنده احتمال دادم این کتاب الان مفقوده، کتاب کتابخانه‌های دنیا بعد یک جایی پیدا بشه نسخه خطیش ان شاء مفقوده این کتاب. بنده احتمال می‌دم که این توقیع مبارک رو با بقیه توقیعات مرحوم کلیری تو این کتاب آورده باشه. رساله علی. ولیضا در کافی ذکر نکرده. در هر حال طبق این تصوّف دقت بکنید چون به عبد بهو راوی از اصحاب دیعوب جهالت اصحاب دیعوب مشکل درست نمی کنه اعتبار به کی میشه محمد بنیابون میشه اینجا ایشون همین راه رو پیش رفتن که جهالت عبالقاسم سیدر مزر نیست از فرام هزمان این خلاصه شرح کلمات ایشون این قضیه این مطلب ایشان درسته این اصل مطلب این اصل این تنبوه ایشان به این مطلب درسته اینجا بحث نیست مخصوصا اگر مبناح وجل خبر سقه به مبنا اقلایی باشه انصافا اوغلا بین خبری که به صورت نامه است با خبری که به صورت شفاهی است فرامی‌ذاره چه لایشكال فرامی‌ذاره. با این حال که من عرض کردم خدمتتون چون در اینجا ما باید به یک شواهد اوغلای برگردیم. طبق شواهد اوغلای این موارد با همدیگه دیگه نمیشی یک نواخ حسابش بکنیم اجبالن از خبر سمایی بهتر میشه اجمالا اما تفصیلن یک نواب مثلا اگر نامه توسط وکیله و وکیله میگه قرعت جوابی اصلا صحیحه صحیحه این جمعه شد این این دیگه درجه علاشه چون اینجا بقید یک شبه میمونه با اون که مثلا خط خط امام نباشه جعل شده باشه تزویش وقتی وکیل میگه قرعت جواب مفروضی که وکیل دیگه ایشان خیلی بعید وکیل چینه اشتباهی رو م مثلا حسین سعید یا داریم علی ابن محزیال میگه قرأ الى... کتب الابرحسن و قرأ تو جواب به خطی علیه سا. این انصافت به نظر ما این مطلب ایشان این مصداق باردش اینجاست مطلب که در این مقاسب آمده که به اسطلاح ناقل کتاب ناقل نامه وکیل باشه و ناقل جواب هم باشه بخش دومش یک کنی از این پایین تر اون جاییست که وکیل باشه اما اون زیل قرآت و به توش نباشه چون خود وکالت یه قرآه این به هر حال شده در اغلایی این هم قبول بشه گفت قدره همون این هم قبول بشه چرا؟ چون توسط وکیل انجام شده ولو ننوشته و قرآتون جواب لیکن خود وکالت خود عنوان وکالت شاد تا حدی موشد بینید هی درجاتش روی مبنای ما که عدم و حجیل خبره این روی جمع شواهد وصوخ اون اولی شواهد وصوخش بیشتره این دومی هم بد نیست چرا چون وکیله این دومی هم اجمالا باز میشه قبولش کرد اگر این نامنگاری توسط وکیل انجام دهد بخش سب باز از این یک درجه پایی تر اونجایستیه که از مشاهیر باشه ولو وکیل نباشه مثل محمد بن ایسا که وکیل نیست یا مثل محمد بن یعقوب کلینی که وکیل نیست اون توقیه مبارک هم ملحواته الواقع اونجا محمد بن یعقوبه لكن اون کسی که وکیل نیست بنویسه و قرعه جواب اون هم خیلی خوبه اون هم نصاب به خودش خوبه یعنی ها وکیل چون وکیل مسافر میاد وکیل نیست سنه و جایقدر ممکن خط اشتباه بود این فرقش اینه در واقع مرحوم استاد در اینجا همه هیچ تفصیل ندادن ایشون خواستن از راه کتابت یک نکته رو استفاده کنن که حدیثو تصحیح بکنن بعد که اون طلا کسی متعرض شده ایشون خیلی مختصر نوشته من دیگه مجبور شدم که اینجا اون مبنای خود اون کامل شهر بدیم ما به نظر ما این مطلب ایشان اجمالا خوبه اما درجات داره نمیشه همه رو گفتن صیغه هستن پس درجه اول وکیل باشه و تصریح به قرائت جواب بکنه درجه دوم وکیل باشه و تصریح به قرائت جواب نکنه بن اخره یک عرف اجتماعی است که میگن از ناحیه وکیل مثلا الان مرجع یا وکیل امام در اون زمان این مطلب است اسم سوم توسط یکی از بزرگان باشه اما تصریح به قرائت جواب شده باشه مثلا قرار جواب به خطی پیش باشه این چرا ضعیفتر چون وکیل نیست جلیل قدر هست عالم هست اما چون وکیل نیست عادتا اونی که آشنایی کلی داره همون وکیل دیگه یه مقدار درجی هست داره عرفیم یاد پایین بخش چهارم اون قسمتی است که وکیل نباشه و قرارتال جواب هم پیش نباشه اجمالا میشه قبول اجمالا چرا؟ چون مفروض اینه که این نامه از امام حکم الهیست این آقام از بزرگانه گكاسان این آقا احتیاط روشیفی قضاایا میکنه یعنی باید شواهدی رو اقامه کنه که مثلا محمد بن یعقوب کلینی ما که اصحاب میعوب نیدام اما ایشان که اصحاب میعوب رو نگه اصحاب میعوب که مفهوم کلی در عالم مجردات کی نیست یک انسان خارجی است پیدا کرده سوالی از امام کرده جوابی اومده وقت محمد بن یعوب کلینی که به تعبیر نجاشی از سند نجاشی تعبیری که داره من در کیسه نیدام نجاشی در حق شیخ توسیم این تعبیم همده اثبت و ناصف الحدیث و اوفق و هنفی مجلشی راجب شیخ کلیمی این طور داره اثبت و ناصف الحدیث و اوفق و همفی. هم در کمال وساقت و هم در کمال تثبت و دقیق و تدبر و تعمل در حدیث اون اثبت یک معناست اوثر معناه دیگری روشن شد وقتی کلینی با اون مقامش میخواد از این اصحاق ابن یعقوم نه از نهی چیزی میره که با و احتمالا هم این اصحاق ابن مثلا این مسئله که هم ملحوات و سلواغه شده که از بوده که به خاطر ضرورت شدیدیگی در اون زمان بوده خودشو کتمان میکرده در تکتون زندگی میکرده به السلام ممکن حالت سازمانی حالت مخفی زندگی مخفی گروهی است یک شخصی بوده که چین نامه مهمی رو به امام نوشته و مسائل مهمی یکی از مسائل بسیار مهم حوادث واقعه است تو این نامه سچهار صد کوینتر مسئله خمسه فهم مال از اوبی هل شیعتنا تنو لیکنو فی حل من مسئله مسائل بسیار مهمی این مسئله شاید مثلا به ثاقب بن یک جوری بوده که ما هیچ اطلاع الان از اون نداریم. اصلاً در, در کل درو... کتب اربعه هم یک روایت واحده و از وجود نداره الان. تا اونجایی که من خبردم دارم من کامل نیست اشتباه نشه. من کامل نیست. ما فقط دو دون روایت نشون داریم. یکی اینجاست، یکی هم توی اینام جلد دو باهر من دیدم. یه وقتی که همه این رساله باهر نگاه کردم، یا احوالات ما معصومیت امام هادی، دارع علی اسحاق بن یعقوب محمد یا فکر کنم محمد باشه. این من ارسان نیم بگم در کتاب میزانول اعتدال در کتاب رجالی هم ما رو نداریم در کتاب رجالی ما اسم ایشان کلن وارد نشده در کتاب میزان اعتدال که ابن حجر از اهل سنت نوشته اسحاق ابن یعقوب رو داره که این قرن نهوم ایشون و نقل میکنه ایشون از بن نعبیتی یحیی ابن אבי تيبا ابن ابي از بزرگان از اهل حلب در حضورهای ما نبوده کتاب رجال خوبی داشته این کتاب فعلا در اختیار ما نیست این که از مصادیری که مصادر ما هست متاسفانه در اختیار خود ما نیست اما اگه کسی حال داشته باشه با فکر کنم کسی این کارو کرده نمولاد بگویم مثلا آجی جعفریان کسی این کارو کرده که کل رجال ابن ابي از این میزان اعتدال استخراج کرده الان راهی که ما در میزان اعتدال ایشون از اون کتاب نقلی که رو مرحوم ابن عبیتی شرحالی از ایشان داده نشه اصحاق ابن عقوب له مکاتبتون الاس صاحب علیه السلام صاحب زمان و به اصطلاح و رواهن شده مثلا محمد ابن عقوب شد مثلا و این را هم اوورده البته ادیه از آدان تصور کرده که این خب یک ارزش علمی به ایشان میده که مثلا در میزان احتضال اهل سنت اسم آوده من عرض کردم این نوشته میزان میزانت که هیچه علمی نداره ها من در این بحثی که اخیران کردم تحلیل میکنیم قضایی ها یک بخشی که ما مثلا از اجار شیخ میگیریم یا از اجار برقی یا از فهرست نجاشی یک بخش هایی وجدانی ماست اگر جای وجدانی ماست که تعبد نمیخوایی بینید مال تعبد چرا داریم تعبد مال جاییست که برای ما واضح نیست ببینی میزان و لیتدار در قرن نهان از ابن عبیتهی در قرن هفتون فکر می کنم از ابن عبیتهی گرفته ابن عبیتهی هم همین مکاتله رو دیده که اصحاق ابن عقوب کتب به امام و از امام اشون هم همین رو دیده این رو نقل کرده میزان رو برداشه نقل کرده خب ما احتیاج به اطلاق نداریم که دستان رو دور بذاریم خب خود ما به هم مکاتله رو میبینیم. یعنی اون مقداری که یحیی بن از مکاتب دیده همونیه که ما وجداناً داریم می‌بینیم اون که یحیی بن نوشته همین چیزیست که شما وجداناً داریم می‌بینید اهل تجبد نداره که شما بریم به کتاب اون سنی میزان اعتدال اونم از ابن عبیته آخرش هم می‌تونم دار میبینم خدا رو چون که اسحاق بن یعقوب انسان مجهولی چون شام توثیقی نکرده فقط نوشیشون راه اهل ما نداره. خب اینا که من خدا داره می‌بینم تشفور نداره دلوقتي. این چون بعضی از آهای نوم هستی که زوگیاد که یک مطلب یک ده شد خیلی مهمه این مطلبی ایشان هیچ ارزش علمی الان برای ما نداره چون یک نفر سنمیه از یک نفر شیعه اون چیزی که الان ما در غند پونزه درک میکنیم برداشته نوشته و مدرک ایشان و مدرک ما هم یکیه یک روایت واحدی است که مرحوم کلینی از اصحاق ابن با بانون توقی ایشان کرده. حید مطلب برای اولین بار در کتاب کوالدین صدوق آمده، بعد در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده و اخیراً در کتاب اختیار آمده. آورده ابن عبیته هیچ مطلب نوشته چیزی نشد. نشد. این چیز نشو تعقل نشو ایشون فی خاص خوب دقت بفرمایید این یک نکته است که شما من میگم اذیات به عنوان بزرگان یک چیزایی میگم به عنوان اینکه مثلا ارزش علمی داره اینا فاقد ارزش علمی یعنی ارزش علمی رنه. و بلکه از ماکان من وارد بحث بشه ازون نشه این نشده همون مقای جوابها تا سوالاتش هم میزن یعنی هرچی که نقل کردن برگشته به کلینی کلینی هم فعلا اونی که لگه خیلما ناقصه یک احتمال هست از در حد احتمال که در رسائل و لعنمه سوال سوالها هم باشه میدن. اما حد احتمال هستی من میدم شد من, من ناییدم تا اونجایی که من دیدم. هیچ کس حتی این احتمال هم نهده که چون کلینی در رساله این مورده در کافی نیست. ایشون درباره باره امام زمان در کتاب الحجه دو سه باب داره. باب و تصمیت منرعه باب و مولد القائم ایشون دو سه باب داره. اما بابی به نام توقیات نداره. در کتاب کافی بیش از یک باب را جب وقیت الله داره ایشان. دو باب یا سه باب بیش از یک باب داره. به هر حال ایشان بابی به نام توقیعات نداره اما در کمال و دین بابی نام توقیعات داره غیبت شیخ طوسی هم بابی به نام توقیعات داره و مرحوم تبرسی هم آخر احتجاج چون احتجاج بر اساس اینه است اونا ولع از احتجاج رازی الا اهمیتی الا امام مهدی صلوات الله سلام علی در اونجا ایشان این احادیث رو نقل کرده مرسلند اما مرحوم صدوق و مرحوم شیخ توصی با سند سند تا مرحوم کلینی حالا دیگه بیش از این واد اون بحث نشد این روایت ما با اون روایت از این ملاک شبیه هم هم ملاکش این هست که اول قاسم سیغل هم نمیشنسیم اصحاق هم نیخو هم هر دو رو هم دوتا از بزرگان ما نهار کردن یکی برمون کلیدی که بسیار بزرگوال که محمد بن ایسا حالتی محمد ایسا بزرگوالی کلید نیست و هر دو هم جواب نمیشن او نصف کرد سه. به هر حال به نظر ما این خودش یک مقداری ارزش علمی داره قبوله این تعبیر به سعیه کی شد؟ فرق است به این که فرض کن مثلا محمد ابن ایса از یک مجهول از امام کاظم نقل بکنه یا محمد ابن ایسا از یک مجهول نامه ای به امام حادی نقل بکنه. این دو تا باید و هم فرض داره. و اغلا بین این تا فرموزن بنابراین که حجیده خبر معیار اساسیش و اغلا ایست بین این تا فرموزن لکه روی این نوشته ها روشن شد حد کار این یک من اما اونی که میشه مکمل بحث باشه که دیگه ایشون ها ننوشتن قیزیشون ها به طریق اغلا ننوشتن من از شکلم ادهی از بزرگان ما بعدها آمدن یک مقدار استفتاعات اصحاب ما رو جمع کردن صحیح مجموع استفتاقی زمان ما در نوشته میشه حسن افرادش اینان استفتاقا دیگه از مرمای خویی از علمای مختلف شده جمعوری میکنند. این در اون زمان اسمش بود مسائل رجال اگر کتابی دیدیم اینا مسائل رجال مثلا خود احمد بن اسحاق عشقی کتاب مسائل رجال اله ابل حسن الصالح و عجیب بدوها اینا استفتاق بوده طبیعت استفتا این است که اون مستفتی من برای ما ناشناخته است اون دیگه روایت نبوده اینا چهره های فرهنگی نبودن رجال بیشتر متصدی افعالی که راوی در آثار علمی رو نرحب میکنن. استفتا الان زمان ما هم همینه این حالا یک طرف قصر گفتم حالا اصلا عرض کرده بحث و این برای موافقت با ایشان و مقداری که بشه حرف ایشان قبول کرد این استفتاعت توسط عبدی از بزرگان جمابری شده و چند تا از با مسائل الرجال اله اول حسن السالس که همون امام هادی و عجیبت ها یه نقیه که از این استفتاعت هم مقدارش در همین کتاب من کتاب برهوم سرائق مستفرفات آمده نوشته ایشو منداله که مستفرفناه من مسائل الرجال اله اول حسن السالس تعلیفه ابن عیاش ما اونجا توضیحات مفصل عرض کردیم و این مطلب یک مطلبی که قابل توجهه ادهی از بزرگان ما این استفتاعات رو جمع کردن تو اشتماه نشد و به طبیع اطال حال الان هم تو زمان خودتون شما اگه فرصیم بنا شدین استفتاء که از مرموهای خویی شده از تو شهرهای ایران تو شهرهای عراق تو, تو شهرهای افغانستان پاکستان جمعوری بکنیم مصطفی ها قالبا افراد عوام هستن عوام شیه هستن یه چهره فرنگی که نیست یه نفری مبتلا به یک مسئله شده به فقیه میدونیسه جواب میاد همین حالت نسبت به عمه ما هم بوده خودم عمه متاخرین لذا در مثل استفساات روشن شد اصلا جهالت مطرح نیست قالبا جاه مجبورن طبیعت استفتاع همینه الان زمان ما هم همینه الانم شما فرسون در شهر قوم بگردین بگید هر کسی یک استفسار از آی خویی کرده پیش من هم هم جمع کنیم چاب بکنیم غالباً مجبورن شد یک دستازش رو معلوم بود همه از دست نادو نو دستازش طبیعت استفسا جمع کردن از موارد متفرقه شیعی که به مسئله محتلاش داره و نامه نوشته حالا یکی از اینها که من اسمش جایی دیدم ما الان یادم نیست. بعد هم گشتن پیدا نکردم اگه شما ها بگرد شما؟ اگر پیدا کردی منم هم بگیم مرحوم محمد ابن ایسا نعبای دیختی نیست حالا من نمیدونم کجا دیدم چه کتاب آدم رسه هرچی نگام کردم بعد چند بار مراجعه کردم هنوز نتونستم دو برده اونجا رو پیدا بکنم که محمد ابن ایسا مسائل رجال الى اول حسن سالس داره استفتاءات رو جمع کرده و ما فعلا الان شا ده ها روایت البته ده ها به معنای نه این کلام مثلا دی بی سی ستا. ما روایات داریم از طریق همین محمد ابن ایسا که بعدش هم مجهولن افراد مجهولی هم. مثلا داره محمد ابن ایسا انفران قاله کتب تو الیک و قاله هم به این سیخ است کتب تو الیک کتب تو الیک کتب الیک به زمیر غائب آورده چون کتاب راجع به حسن سالس بوده یعنی کتب اویل عبر حسن ساله الان ما خود ما الان در کتب اربعه داریم شاید پنشیش روایتیم در تقریبا تمام اینها حالا به استثنای یک کلوم حسابش رو بعد ارزیم کنم محمد ابن عیسان عبر قاسم سیغل قال کتاب شده یکیش ارز کردم به شما در با دو تاش که اینجاست الان دقت بکنید. اینجا الان در کتاب من این حدیث رویشون این روز از کتاب تحض در کتاب مرحوم صاحب وصایلم هست با که دیگه وقت نکردند ببینید در این شماره در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 371 شماره به صحیحه 197 احمد بن محمد بن عیسی بن عبد القاس سلام اینجاست ببینید من با شرح مفصل بیانش رو می‌کشه بعد می‌نویسه انا ابقال کترت الی بعد در همین کتاب به اصطلاح در همین کتابی که الان دست من هست در صفحه همین جلد تحضیم در همین کتاب سی ساله هفتاده صفحه بعدش داره محمد ابن حسن صفار این از منفردات شرکت. این من محمد ابن ایسب نعبید این ابل قاسم سیگل و بلدی اینی که الان از مکاسب خوندیم این مطمه قال كتب الى الرجل جعلنا لا فدا در اخرشم داره کتاب تو الى جل تو شداد و قواه مستيف التي تسمى الصفان و عرض کردن در جای دیگه هم داریم کسانی که کسی که بیشتر این احادیث را نقل کرده محمد بن عیساس ابن عبدالقاسم سیغرت یکی در باب وصل میت داریم یکی در با وصیت باب های متعدد داریم و من در جایی دیدم الان تو ذهنم نیست که مرحوم محمد این ایسا استفتاعاتی رو که اصحاب داشتن جمع کرده از حضرت حدیده هم داره چار پنج رو از این استفتاعات از این شخصیه اول قاسم سهرمه به حالا این اول قاسم سهرمه حالش احوالش بعدها انشاءالله یکیش همین است که در کتاب استصحاب مرحوم شیخ خورده ان محمد ابن عیسا ان علی محمد قاله کتب تو علی اون هم حضرت حادیه برواب یوم و شک استصحاب امان جاری میکنم اون هم دیگه وقت تمام شد از آیم عذر میخویم یک کمی زیادی از دخلت کردیم تعالی تردا توضیحات بیشتر مثل این قسمت که این استفتاءات مسائل و رجال محمد ابن عیساست اینو من اطمینان دارم خودم اجمالم اما الان ممثلش تو ذهن نیست. اگر آقایان کسی موفق شد توی کامپیوتر کامپیو پیدا کردید به من هم خبره بدین و اگر آان وقت داشتن در غیر کت به احتمالا احتماه ناره باید داریم. اونم اضافه کنید. و الله الان خو.